صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا قلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وَعَلَمْ أَنَّ مَا نك لم, لَمْ يكن لِيُصِيبُكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِئُكَ وَعَلَمْ أَنَّ النَّسْرَ مَعَ السَّبْرِ وَعَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَعَنَّ مَعَ الْغُسْرِ يُصْدَى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا کنیم که خدای متعال بر آنچه که می و می شنویم توفیق عمل نصیب بفرماید آنچه که مهم هست عمل کردن به آیات قرآنی و احادیث جناب رسول الله صلی الله و وسلم هست در این حدیث مبارک که قراعت شد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم تکمت ها اسرار و مباحث بسیار مهمی نهفته هست که برای هر شخص مؤمن و مسلمان لازم است که بر اون نکات بر اون مباحث و گفته‌های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلام عامل باشد و آن را سرمشک زندگی خود قرار بدهد تا اینکه به سعادت دنیا و آخرت نائل گردد مسلمین و همه ما و شما احتیاج به این مباحث داریم احتیاج به این نصیحت‌های جناب رسول الله صلی الله علیه و وسلم داریم که خوب گوش کنیم و بشنویم و بر آن عمل باشیم در این حدیث پیغمبر اکرم که از طریق حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت شده است حضرت ابن عباس میفرماید که تو خلف النبی صلی الله علیه و سلم یوما من پشت سر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز بر مرکب سوار بودم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در قسمت جلو مرکب و من پشت سر پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بودم که فرمودن یا قلام ای پسر جان حضرت عبدالله ابن عباس در اون زمان تقریبا در سن ده یا یازده سالگی بودن فرمودن ای پسر جان خب عبد الله ابن عباس میدانید که پسر عموی پیغمبر علیه الصلاۃ و السلام هم بودن پسر حضرت عباس بودن که عباس عموی پیغمبر علیه الصلاۃ و السلام هستن فرمودن که ای پسر میخواهم تو را چند نصیحت کنم اعلمک که کلمات من میخواهم چند کلمه با تو صحبت کنم میخواهم چند نصیحت کنم تو را چند کلمه با تو بگویم و به تو بیاموزانم فرمودن که احفظ الله یحفظ که ای پسر جان اول نصیحت من به تو این هست که خدا را حفاظت کن خدا را رعایت کن اگر تو این کار را کردی یحفظک که خدای متعال هم تو را حفاظت می کند اگر تو خدا را رعایت کردی و خدا را حفاظت کردی خدای متعال هم تو را رعایت می کند نگهتان تو از و تو را حفاظت خواهد کرد ببینید برادران ما همه ما احتیاج به حفاظت داریم اگر خدای نخواسته خدا ما را به خود ما وابو گذارد چه بدبختی ها که بر سر ما خواهد آمد و این شیطان چه بدبختی هایی که بر سر ما وارد نخواهد کرد از این جهت همه ما احتیاج به حفاظت داریم همه ما احتیاج به رعایت داریم که خدای متعال ما را رعایت کند زیر نظر داشته باشد حفاظت کند اما این مشروط است با شرط حفاظت خدا مشروط به شرط است که میفرمایند پیغمبر اکرم احفظ الله یحفظ کرد اگر تو خدا را حفاظت کردی اگر تو خدا را رعایت کردی اون وقت است که خدا تو را حفاظت میکند و خدا تو را رعایت میکند اینجا یک سآل پیش می آید که خدای متعال که احتیاج به حفاظت ندارد خدای متعال احتیاج به دگهبانی و رعایت ندارد چطور پیغمبر اکرم می احفظ الله یحفظ که ای پسر جان ای پسر امو. خدا را رعایت کن خدا را حفاظت کن تا خدا تو را حفاظت کند حفاظت خدا به چه صورت هست از این جهت، علما می نویسند حفاظت خدا و رعایت خدا به معنای حفاظت اوامر خداست به معنای حفاظت دستورات خداست و اجتناب از نواهی و معاسی خداست، نافرمانی خداست، این هست حفاظت خدا، خدا را حفاظت کن، یعنی اوامر خدا را حفاظت کن، اون چیزهایی را که به تو دستور داده است، اون را رایت کن، از نافرمانی و معاسی الله اجتناب کن، این هست حفاظت خدا، و آنچه که رضایت الله دران است اون را انجام بده و از آنچه که قذب و خشم الله هست دوری کن پرهیز کن این حس راعایت الله و این از حفاظت الله که اگر تو این کار را کردی اگر، اوامر الله را فرمان برداری کردی و از نواهی الله اجتناب کردی و رضایت الله را جلب کردی و از قذب و خشم الله اجتناب و پرهیز و دوری کردی اون موقع هست که خدا هم تو را رایت می کند هم تو را حفاظت می کند علما می نویسند که حفاظت خدا تنها و خود شخص بر نمی گردن. اگر یک شخص صالح باشد فرمانبردار باشد خدای متعال خود او را هم حفاظت می کند و برکت در مال فرزندان و نوادگان او هم عنایت می کند این رحمت الله است این نتیجه حفاظت خداست. که خدای متعال هم تو را حفاظت خواهد کرد هم اهل بیت تو, را بیت تو را حفاظت خواهد کرد و هم نسل تو را حفاظت خواهد کرد در جان اونها در مال اونها برکت اداعیت خواهد کرد اگر تو خواسته الله را برآورد کنی خدای متعال خواسته تو را براورده می ما خاسته داریم یا نداریم همه ما خاسته داریم انسان بدون خاسته نمی شود بنده بدون خاسته نمی شود هر کسی خاسته دارد خاستها فرق می کند اما بنده خاسته دارد اگر می خواهی که خاسته تو برابرده شود تو خاسته خدا را برابر کن که اگر این کار را کردی خدا خواسته های تو را برآورده میکند از این جهت علما میفرمایند که این حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت بر این دارد که جزای خداوندی از جنس عمل است همون مفاهات عملی که بر سر زبان های ما و شما جاری هست که میگوییم مکافات عمل از مقافات عمل قافل مشو گندم از گندم بروی جوز جو علماء می فرماین که این حدیث دلالت بر این دارد که جزای الله از جنس اعمال انسان است هر طور با خدا رفتار کنی، خدا هم به همون صورت با تو رفتار کنید و خدای متعال در اولین مرتبه کار خود را تمام کرده انعامات خود را بر انسان فرستاده انعامات خود را تکمیل کرده خدای متعال برای انسان تمام آسمان ها و زمین را خلق کرده تا اینکه بنده استفاده کند خدای متعال انسان را گرامی داشته و اکرام کرده و لقد کرمنا بنی آدم ما بنی آدم را اکرام کردیم او را گرامی داشتیم خدای متعال انسان را به بهترین صورت آفریده ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان را با بهترین قوام و بهترین صورت و قیافه ما انسان را خلق کردیم خدای متعال کار خود را کرده در ابتدا تمام انعامات خود را بر ما نازل کرده و فرستاده انعامات ظاهری انعامات معنوی همه را تکمیل کرده اما حالا نوبت ما انسان ها هست الان دیگه نوبت ما انسان ها هست که چطور در مقابل این نعمت های الله رفتار کنیم با خدا چطور رفتار کنیم الان دیگه نوبت بنده هست که اگر با خدا خوب تا کند با خدا خوب رفتار کند خدای متعال هم به همین صورت با بندای خود و با این انسان خوب تا خواهد کرد اما اگر عمل ما و شما برنامه ما و شما بر علیه عوامر و فرابین خدا باشد با خدا خوب تا نکنیم پس توقع خوبی هم از خدا نداشته باشیم که پیغمبر اکرم برای ابن عباس میفرمایند. احفظ الله یحفظ کرد اگر تو خدا را حفاظت کردی خدا هم تو را حفاظت می کند اما اگر تو خدا را حفاظت نکردی اوامر خدا را رعایت نکردی پس توقع خوبی هم از خدا نداشته باش یک درود ختم بفرموید که علما می این حدیث دلالت بر این دارد که جزای اعمال جزای خداوندی از جنس عمل انسان هاست از آیات متعدد این مطلب تایید می شود خدای متعال در سوره بقره آیه چل نسبت به بنی اسرائیل می فرماید اوفو بی عهدی اوفو به عهد شما بنی اسرائیل اگر بر اهد من وفا کنید من هم بر اهد شما وفا می کنم ببینین مقابله به مثل اوفو بی اهدی اوفو کم اگر شما بر عهد من بر پیمان که با, با من بستید در روز علاست در روز که خدا متعال به قدرت کامله خود همه انسانها را خلق کرد و گفت براب بکن. من پروردگار شما هستم بلا. همه گفتیم بله همه ما اقرار کردیم این عهد و پیمانه انسانها با خداست خدای متعال می اوفو به عهدی اوفو به عهد کم اگر شما به عهد من وفایی کنید من هم بر عهد خود پایبند هستم من نقض عهد نکردم تمام اون وعده هایی که دادم اون وعده ها عملی خواهد شد ببینید مقابله به میست یا در آیه دیگر باز هم سوره بقره آیه احتمالاً 152 سوره بقره باشد که می‌فرماید فرماید فذکرونی اذکر کن. اگر شما مرا را یاد کنید من خدا را یاد کنید و ذکر من را بکنید، من هم اذکر کن من هم شما را ذکر خواهم کرد یاد شما را خواهم کرد ببینید جزا جزای خداوندی از جنس آمن هر طوری که شما با خدا رفتار کنید به همون نوه خدا با شما رفتار می کند اگر شما بگویید سبحان الله خدا را یاد کنید خدای متعال در ملای اعلا. و در میان گروه فرشتگان خدای متعال هم یاد شما را می کند مگر این بنده من است که مرا را یاد کرد پس خدای متعال میفرماید فرماید فضکرونی از کرکم شما ما را ذکر کنید و یاد کنید تا اینکه من هم یاد شما و ذکر شما را بکنم در ما بین بهترین مخلوقات خدا که فرشتگان الهی باشند این هم مقابله به مثل یا یک حدیث قدسی دیگر هست که خدای متعال میفرماید که اذا تقرب العبد الی تقرب تو الیه ذراعا اگر بنده یک وجب به من نزدیک بشود من بن یک دست به او نزدیک می شود مقابله به مثل است مواظب باشی جزا از جنس عمل است اگر شما خود را به خدا نزدیک کردید خدای متعال هم خود را به شما نزدیک می کند ارس کردم خدای متعال در اول اتمام حجت کرده همه کارها را فراهم کرده اما الان نوبت ما هست نوبت انسان ها هست اگر بنده یک وجب به من نزدیک بشود من یک با یک دست یک بغل به بنابراین معروف به نزدیک خواهم شد و اذا یمشی يمشي هر اگر بنده آهسته آهسته به سراغ من بیاید من دویده به سوی بنده خود حرکت میکنم قابل بمس اگر شما به طرف خدا حرکت کردید آهسته آهسته خدای متعال میفرماید اتيته هر ولتا من دویده به سوی بنده خود میایی پس کوتاهی از ماست از خدا هیچ کوتاهی نیست ما به طرف خدا حرکت نکردیم تا اینکه خدا به طرف ما حرکت کند مشکلات ما را حل کند مسائب ما را حل کند یا آیه قرآن انت الله یا کن ببینید مشروط همه چیز با شرط اگر شما خدا را نصرت کردید دین خدا را نصرت کردید قرآن خدا سنت رسول الله شریعت اسلام را اگر شما نصرت کردید یانصرکم خدا هم شما را نصرت کند اما اگر شما بی خیال بودید به فکر نبودید از دین خدا از شریعت خدا خب خدای متعال هم شما را به حال شما ویل خواهد کرد رها خواهد کرد معامله به مست جزای خداوندی از جنس عمل انسانها انتنصر الله یا اگر شما دین خدا را نسبت کردید حتما خدای متعال هم شما را نصرت خواهد کرد و در حدیث بعدی که خدای متعال میفرماید غفت پیغمبر اکرم می فرماید تا اف و نساء شما خود را حفظ کنید پاکدامنی خود را حفظ کنید تا اینکه زن های شما پاکدامن بمانند معامله به مست اگر شما چشم به ناموس دیگران نداشتید و به ناموس دیگران تجاوز نکردید و دامن خود را پاک نگه داشتید بدانید که همسران شما هم پاک خواهند بود اما خدای نخواسته اگر شما به ناموس دیگران چشم نظر کردید و تجاوز کردید مطمئن نباشید که به همسران شما تجاوز نشود معامله به مثل از برادران افو، می عفو پیغمبر اکرم میفرماید عفو تعفوا نساءكم شما خود را پاک پا نگه دارید عفیف نگه دارید تا اینکه زن شما عفیف بمانند و پاک بمانند این درس اسلام است برادران این اخلاق این درس هایی است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما می دهند اما متاسفانه کسانی که ظاهران خود را مسلمان دارن و ایمان در قلب اونها هنوز داخل نشده است خودشان هم لاعبالی هستن و لاعبالی را میخواهند ترویج کنن در جامعه نوزو الله چه حرفایی میگوین میگوین چه اشکال دارد ناموس مشترک باشه تو هم به ناموس او نگاه کن او هم به ناموس تو نگاه کنه چه اشکال دارد این چه صحبت هایی میکنند اما پیغمبر اکرام به ما چه درسی میدهد اگر میخوایید که همسران شما پاکدامن بمانند شما هم خود را پاکدامن نگه دارید این از درس اسلام این از اخلاق اسلام که به ما درس میدهد برادران ما باید خیلی مواظب باشیم چون که عرض کردم افرادی هستن که خودشان لاعبادی هستن شاید بیناموس و بیغیرت باشند باشن این مسئله را در ما مردم و جامعه ارواج بدن که مؤمنین و مسلمان ها باید خیلی هوشیار باشن مواظب مسائل خود باشن بر هایی که باشن این جامعه می شوند باشن این است که گفتیم جزای الله از جنس عمل است به هر نحوه که انسان ها با خدا تا کنند و رفتار کنند خدای متعال هم به همون صورت با انسان ها و بندگان خود رفتار می کند حضرت سعید ابن المصیب یکی از بزرگان دین چی می فرماید؟, می فرماید که خدای متعال می فرماید که اگر انسان خود خود را حفاظت کند همونطور که اول عرض کردم خدای متعال خود او را هم حفاظت می کند در مال و در جان فرزندان او هم برکت عنایت می کند ایشان عجیب استدلال دارد حضرت سید ابن المسیب ایشان می فرماید در سوره کهف واقعی حضرت موسی و خز که بیان می شود در اونجا خدای مطال می فرمایید که و عمل جدا و فکانقلین تیمین فللمیننه و کان تحت و کنزون له ما فکان ابو هم ما سالالی ها فراد رب بکن ی لغ اشده ما و از تخر جا کنز و من ربگ چی از؟ واگل چیست وقتی که اذلت مویسااب و حضرت خزر همراه شد، اون واقعه که پیش آمد یک از اون واقعی بود که یک دیوار که در حالت سقوط بود و در حالت افتادن بود حضرت خز آمد او را اصلاح کرد درست کرد دیوار را کاری کرد که ساقد نشود نیفتد حضرت موسی گفت ای چه کار خوب ای یعنی چه گفت نمیفهمی؟ اگر صبر می کردی تمام مسائل برای تو منکشف می شود. این در تحت این دیوار یک است، یک است. از دو یه تیم که خدای راده کرده است که اینها بالغ بشن و این کنز خود را و گنج خود را از این زیر دیوار خارج کنن که من به این خاطر راست کردم در اینجا می و کان ابو هما صالحه این دو پسر بچه پدر اینها مرد صالح بود به خاطر صالح بودن پدر خدای متعال حضرت خضر را واسطه کرد تا اینکه بیاید این دیوال را راس کند واسقود جلوگیری بشه تا اینکه اون مال این دوی تیم باقی بماند ببینید این است که حضرت سید ابن مسیب میفرماید اگر مت... اگر ما خدا را رعایت کنیم حفاظت کنیم اوامر خدا را حفاظت کنیم خدای متعال ما را هم حفاظت خواهد کرد در جان و اموال فرزندان ما هم خدای متعال برکت انایت خواهد کرد به هر حال مثل که وقت روب پایان است و از این حدیث طویل حضرت عبدالله ابن عباس فقط من یک جمله را خدمت شما عرض کردم و اون هم این که احفظ الله احفظ که اگر تو خدا را حفاظت کنی خدای متعال تو را حفاظت خواهد کرد و رعایت خواهد کرد خب یک چند کلمه این درودی بفرستید چند کلمه ای نسبت به مسائل روز باید خدمت شما عرض کنم خب در این هفته و در این ایام ارتحال عزت آیت الله را داشتیم که واقعا فوتشان در یک زایعی بود برای نظام و انقلاب خب شخصیت ایشان را خود شما در این ایام شنیدید از زبان مسئولین، علما، مراجع و رجال سیاسی که شخصیت این به بزرگوار را توصیف میکردن شما اینها را شنیدید و همچنین از پیام تسلیت مقام معظم رهبری که به همین مناسبت صادر شد از کلماتی که ایشان به کار بردن خب شخصیت آیتالله هاشمی رفزانجانی مشخص میشود که ایشان چه شخصیت داشتن خصوصیت های ایشان را که شنیدیم و از رجال علما بزرگان همین بود که ایشان از لحاظ علمی و فرهنگی جایگاه بلند داشتند. ایشان از رنگ کشیده های قبل از دوران انقلاب بودند که برای بسمن رساندن انقلاب و مبارزه با رژیم شاهنشاهی سختی ها کشید زندان رفت رنج ها را متحمل شد خوبیشان یک سیاست مزار بزرگی بودن و از ارکان انقلاب و از استوانه های انقلاب بودن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم مسئولیت های مهمی را بر عهده داشتند. اصل نظام و جمهوریت را مد نظر داشتن و روی این مسئله تاکید داشتن از این جهت ملجع و پناهگاه تمام گروه های سیاسی با سلایق مختلف بودن همه می پیششان صحبت می کردن راز دل می کردن. و از همه مهمتر یکی از صفات بود که سبور بودن چیزی نمی گفتن. در همین اواخر که دیدید شورای نگهبان صلاحیت ایشان را رد کرد برای ریاست جمهوری هیچ اعتراضی نکرد. به خاطر حفظ وحدت چیزی نگفت گفت وحدت از همه مهمتر هست و از همه مهمتر ایشان اعتدالگرا بودن همگرا بودن وحدتگرا بودن که همین مهم هست برادران آنچه که مهم است برای ما همین هست امروز ما احتیاج به وحدت داریم احتیاج به همگرایی داریم احتیاج داریم که تقریباً با هم بنشیم و از درد و قمها و رنجهای یک دیگر متنه بشیم جامعه اسلامی احتیاج به این مسائل دارد افراد و تفرید نباید در جامعه باشد افراد و تفرید کاری را به جایی نمی رساند غیر از این کارها را مشکلتر می کند چه اشیه باشد چه اصنی باشد افراد و تفرید کار را درست نمی کند بلکه خرابتر می کند اون کسی که عالم است، اون کسی که مسئول است، اون کسی که رایی هست اون کسی که رییت دارد رییت هست همه باید این را نظر داشته باشند اعتدال و دوری از افراد به تفرید ببینید اگر انسان افراد داشته باشد گاهی اوقات خدای متعال هم عقل را از انسان میگیرد که اون حرفایی که میگوید نمیفهمد در همین ایام ارتحال آیت الله رفسنجانی خب یک شخصی میآید ببینید چی میگوید میگوید که حاشمی رفسنجانی مثل تلها و زبیر بود همانطور که اونها در ابتدا خوب بودن و از خارج شدن از اون راه مستقیم با حضرت علی چه کار کردن این آقای حاشمی رفسنجانی هم به همین صورت بود اول خوب بود بعدن خارج شد اول از این که این تشبیح چی هست این آیا غیر از افراد هست چیزی؟ اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم جایگاه خود را دارن ما نمی توانیم نسبت به اونها مسائلی را مطرح کنیم اون کلمات که حضرت علی در وصف حضرت تلح و زبیر گفت در کتاب ها موجود هست و این که خب آقای رفسنجانی به این صورت نبود تا آخر به همون صورت که اول بود تا آخر به همون صورت مان اما عرض کردم سبور بود ببینید افراد انسان را به کجا می رسد که انگار عقل از انسان سلب می شود که نمی که چه بگوید در حرفای خود نمی بیند که مقام رهبری چه کلماتی را در وصف آقای رفسنجانی بیان کردن و گفتن اون کلماتی که ایشان گفتن به هر حال آنچه که مهم هست برادران این هست که ما امروز احتیاج به وحدت داریم احتیاج به همگرایی داریم نباید در جامعه افراد تفرید باشد که افراد و تفرید غیر از این که کار را مشکلتر و خرابتر می کند اصلاح نمی کند به هر حال عرض کردم این ضایعه بزرگی بود خدای متعال رحمت کند ایشان را و همه علماء اسلام را و همه اموات ما را خدای متعال مغفرت بفرماید و دعا بکنیم که خدای متعال وحدت و خووت و برادری و اعتدال را به همه ما نصیب بفرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته